همه مشکلات توهم ذهن است. احساس میکنم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده است. احساس شفافیت میکنم اما مشکلاتم برجا ماندند و انتظار مرا میکشند اینطور نیست؟ آنها حل نشدند. آیا اینگونه نیست که من فقط به طور موقت آنها را نادیده گرفته هم؟ اگر همین لحظه تو را در بهشت بگذارند، طولی نمیکشد که ذهن تو به تو می گوید، خب که چه؟ من از حل مشکلات سخن نمیگویم، بلکه از این سخن می گویم که هیچ مشکلی وجود ندارد. فقط وضعیت زندگی، که میتوانی در لحظه حال با آنها مواجه شوی و یا آنها را به عنوان پاری از بودن لحظه حال بپذیری و بگذاری خود به خود تغییر کنند و یا در وقت مناسب حل و فصلشان کنی مشکلات ساخته و پرداخته زهنند و برای بقای خود به زمان نیاز دارند. آنها نمیتوانند در واقعیت لحظه حال باقی بمانند. توجه خود را به لحظه حال معطوف کن و به من بگو در این لحظه چه مشکلی داری؟ پاسخی نداری زیرا وقتی توجه خود را کاملا به لحظه حال معطوف می مشکلی باقی نمی ماند آری، فقط وضعیتی باقی می که تو می آن را بپذیری و یا آن را برطرف کنی چرا این وضعیت را به یک مسئله یا مشکل تبدیل می اصلاً چرا چیزی را به یک مسئله یا مشکل تبدیل می کنی؟ آیا زندگی همانطور که هست، بندازه کافی چال نیست؟ چه احتیاجی به مسئله ها و مشکلات داری؟ ذهن تو مشکلات را دوست دارد، زیرا مشکلات به تو هویت می بخشند. این موضوع طبیعی است، اما عقلانی نیست. معنای مسئله یا مشکل این است. تو در وضعیتی ذهنی قرار ای و در لحظه حال نمی‌خواهی اقدامی بکنی و یا نمی‌توانی اقدامی بکنی تا از این وضعیت بیرون بیایی. اما به طور ناخودآگاه این وضعیت را به پاری از احساسی تبدیل می‌کنی که از خود داری. چنان قرق وضعیت زندگی خود میشوی که حس زندگی را از دست می‌دهی. و بودن خویش را احساس نمیکنی یا اینکه بار احمقانه صدها مسئله مربوط به آینده را در ذهن حمل میکنی و از تمرکز به روی لحظی حال و کاری که می توانی در این لحظه انجام دهی تفره میروی وقتی برای خود مسئلهای میسازی درد و رنج میآفرینی تو به یک تصمیم ساده نیاز داری به خود بگو مهم نیست که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد من تصمیم گرفتم دیگر درد و رنج بیشتری برای خود نیافرینم دیگر برای خودم مسئله نمیسازم همین تصمیم ساده بسیار تأثیرگذار و سازنده است میدانم از این تصمیم ساده نیز عاجزی تو وقتی این تصمیم ساده را میگیری که از درد و رنج خود به سطوح آمده باشی و راه نجاتی بجویی راه نجاتی در کار نیست مگر در لحظه حال و با نیروی لحظه حال. اگر برای خود درد و رنج نیافرینی، برای دیگران هم درد و رنج نمیآفرینی دیگر زمین زیبا را آلوده نمی کنی. دیگر فضای پاک درون خیش را مسموم نمی کنی. دیگر روح دیگران را با نگرش منفی و مسئله ساز خود آزرده نمی کنی. اگر وضعیت پرمخاطره مرگ و زندگی را تجربه کرده باشی می‌دانی که این وضعیت برای تو یک مسئله یا مشکل نبوده است. در این وضعیت ذهن مجال آن را نیافته است که عدا و اطوار در بیاورد و آن وضعیت را به یک مسئله یا مشکل تبدیل کند. در یک وضعیت استراری و پرخطر ذهن متوقف می شود. تو، با تمام وجود در لحظه حال حضور میابی و قدرتی شگفت و بینهایت وجود تو را احاطه می کند. دلیل اینکه بعضی از آدم معمولی به یک بار توان آن را می که دست به اعمال قهرمانی شگفت بزنند همین است. در شرایط اضطراری چه باقی بمانی یا نمانی چون این حالتی به تو دست می در هر حال شرایط اضطراری، شرایط مرگ و زندگی هرگز به مسئله و مشکل تبدیل نمی شود. بعضیها عصبانه میشوند وقتی میگویم که مسائل و مشکلات فهممیند. من با این حرف خود تهدید می کنم تصویری را که آنها از خود ترسیم کردند. آنها زمان زیادی را برای ترسیم این تصویر از خود سرمایه گذاری کردند. آنها ناآگاهانه، سالها، حوییت خودشان را بر اساس دردها، مشکلات و مسائلشان تعریف کردند. بدون اینها، آنها چه کسی خواهند بود؟ بسیاری از حرفهایی که آدمها میزنند و یا کارهایی که می کنند، برخواسته از ترس است. ترسی که ریشه در آینده و گریز از لحظه حال دارد. همانطور که در لحظه حال مسئله و مشکلی وجود ندارد، ترس نیز وجود ندارد. اگر مقیم لحظه حال باشی و وضعیتی خاص پیش بیاید کنش تو شفاف و سریح و برخواسته از آگاهی نسبت به لحظه حال خواهد بود چون این کنشی نافستر و موثرتر خواهد بود کنش تو واکنشی نیست که ریشه در شرطی شدنهای گذشته ذهن تو داشته باشد بلکه پاسخی خود خودجوش به وضعیت حال اگر میخواهی با ذهن اسیر زمان خود به این وضعیت خاص پاسخ بدهی بهتران است که کاری نکنی و روی لحظه ی حال متمرکز شوی. جهشی کیهانی در مسیر تکامل آگاهی من به طور مبهم منظورتان را از رهایی از ذهن و زمان فهمیدم اما گذشته و آینده چنان قویند که نمیتوانم برای مدتی طولانی آنها را از خود دور نگه دارم آگاهی اسیر ذهن در روح بشر لانه کرده است و قصد بیرون رفتن ندارد اما کار ما در اینجا بخشی از دگرگونی بنیادی است که در آگاهی جمعی این سیاره و فراسوی آن رخ داده است بیداری آگاهی از خواب ماده، صورتها و جدا انگاری خود از همه چیز و همه کس یعنی خاتمه دادن به زمان ما داریم الگوهای ذهنی را می شکنیم. الگوهایی که سالیان سال است بر انسان حکومت می کنند. الگوهایی که درد و رنجهای بسیاری آفریده اند. این الگوها همان شیطان هستند. اما بهتر است آنها را ناآگاهی و حماقت بنامیم. در هم شکستن ناآگاهی و هماغت آیا این چیزی است که ما باید انجام بدهیم یا خود به خود اتفاق میفتد؟ منظورم آن است که آیا این دیگرگونی اجتناب ناپذیر است؟ این موضوع به دیدگاه تو بستگی دارد. انجام دادن و خود به خود اتفاق افتادن هر دو یک روند هستند. زیرا تو با تمامیت آگاهی یگانه هستی. بنابراین نمی توانی این دو را از هم جدا کنی اما تضمینی صد درصد وجود ندارد که بشر بتواند از احده این کار مهم برایت، این کار روندی خود به خودی نیست همت تو بخشی از این روند است با وجود این این روند جهشی کیهانی در مسیر آگاهی انسان است و تنها شانس انسان برای بغاست شور و سرمستی هستی برای اینکه بدانی آیا تحت سلطه زمان هستی یا نه معیاری ساده وجود دارد از خود بپرس آیا در آن چ انجام می‌دهم شادمانی و روشنی و سبکبالی احساس می کنم یا نه اگر چنین احساسی نداری بنابراین زمان هجاب لحظه حال تو شده و تو زندگی را باری بر دوش و کاری پر مشقت احساس میکنی اگر در آنچه انجام میدهی احساس شادمانی روشنی و سبکبالی نداری این بدان معنا نیست که ضرورتن باید کار خود را تغییر بدهی فقط کافیست که کیفیت و چگونگی کار خود را دگرگون کنی. کیفیت همباره مهمتر از کمیت است. ببین آیا می میتوانی توجه خود را به نفس کار و نه به نتیجهی که از کار میگیری معطوف کنی؟ توجه خود را به چیزهایی معطوف کن که لحظه حال در اختیارت میگذارد. این بدان معناست که تو توان پذیرش آنچه هست را نیز داری. زیرا ممکن نیست توجه خود را به چیزی معطوف کنی و در عین حال در برابرش بیستی به محض آنکه لحظه حال را مقتنم می شماری همه ناراحتی ها و حرز به پایان می رسد انگاه زندگی شادمانه در برابر چشمان تو گشوده می شود احساس سبکبالی می کنی وقتی خواستگاه عمل تو لحظه حال باشد هر کاری که می کنی سرشار می شود از احساس فضیلت توجه و عشق حتی کارهای ساده روزمره تو بنابراین این دغدغه نتیجه عمل خود را نداشته باش توجه خود را متوجه عمل خود کن نتیجه خود به خود به دست خواهد آمد این تمرینی معنوی و بسیار موثر است در کتاب گیتا یکی از قدیمی ترین و زیباترین کتاب های های معنوی جهان انقطاع از نتیجه عمل را کارمایوگا خاندند. در این کتاب درباره انقطاع از نتیجه عمل به عنوان کرداری قدسی سخن گفته شده است. وقتی از شدت گریز از لحظه حال کاسته می شود، شور و سرمستی هستی به همه کارهای تو جاری می شود. به محزان که توجه تو به لحظه حال معطوف می شود حضوری را احساس می کنی سکوتی را آرامشی ژرف را دیگر برای کامیابی و رضایت در بند آینده نخواهی بود رهستگاری خود را به آینده مکول نمی کنی بنابراین دیگر وابسته نتیجه ها نیستی نه شکست و نه موفقیت هیچ کدام قدرتان را نخواهند داشت که حالت درونی وجود تو را دگرگون کنند. تو زندگی را زیر لایه وضعیت زندگیت یافته ای با قیبت زمان روانی خود تو از هستی معنا می گیرد نه از گذشته شخصی تو بنابراین نیاز روانی این که کسی بشوی غیر از آن که هستی ناپدید می شود. در جهان در سطح وضعیت زندگیت ممکن است ثروتمند، دانشمند، موفق و یا آزاد از این و آن بشوی اما در ژرفای وجود خود در لحظه حال کامل هستی در آن مرتبه احساس کمال در لحظه حال آیا قادر خواهیم بود هدفهایی را در دنیای بیرونی تعیین کنیم و به سوی آنها گام برداریم البته که قادر خواهی بود اما دیگر تبقع بی اساس آن را نداری که در آینده با هر چیز و هر کس برخورد می کنی تو را نجات دهد یا موجب شادی و خوشحالی تو شود. تا که به وضعیت زندگی تو مربوط هست چیزهایی هست که می توانی آنها را به دست بیاوری. این دست در دنیای صورتها اتفاق میافتد. دنیای به دست آوردن ها و از دست دادنها اما تو در جرفای وجودت با هستی پیوند داری، کامل هستی وقتی این حقیقت را خوب بفهمی آنگاه کارهایت سرشار می شود از بازیگوشی، شادمانی و انرژی با رهایی زمان روانی دیگر با تردید، تزلزل، ترس، عصبیت ناخشنودی و میل به کسی دیگر شدن به سوی هدفهایت نمی روی دیگر ترس شکست خوردن مانع عمل و اقدام تو نمی شود نفس شکست را نابودی خود می پندارد وقتی احساس خود را از هستی بگیری وقتی از شدن رها شوی دیگر شادمانی هایت و احساس خود تو به نتیجه ها وابسته نخواهد بود بدین از ترس رها خواهی شد دیگر در جایی که ثبات و عدم تغییر وجود ندارند طالب ثبات و دوام نمیشوی یعنی در دنیای صورتها دنیای سود و زیان دنیای تولد و مرگ دیگر توقع نداری که وضعیتها شرایط جاها و یا آدمها مدام تو را خوشحال کنند بنابراین اگر شادت نکنند آزرد خاطر نخواهی شد تو حضور همه چیز و همه کس را مقتنم می‌دانی اما در بند هیچ چیز و هیچ کس نمی‌مانی صورت‌ها به دنیا می‌آیند و می‌میرند اما تو متوجه آن بی‌صورت جاودانه‌ای هستی که در ذات همه صورتها هست حالا می‌دانی که آنچه چه واقعیت دارد هرگز مورد تهدید قرار نمی‌گیرد نه ترسی تو را دربر میگیرد و نه اندوهی وقتی این حالت ملکی وجود تو شود چگونه ممکن است موفق نباشی تو پیشاپیش موفق شده بخشه های زن برای فرار از لحظه حال گم کردن لحظه حال اصل گمراه. تا اگر سرانجام بپذیرم که زمان وهم است، چه فرقی به حال زندگی من خواهد داشت؟ من هنوز مجبور خواهم بود که در دنیایی زندگی کنم که کاملا در تسخیر زمان است. پذیرش ذهنی موضوع دیگری است و هیچ تغییر و تفاوتی در زندگی تو ایجاد نمی کند. فهم این حقیقت مستلزم زیستن آن است. وقتی تک تک سلول های بدن تو چنان حضور می آبند که با تفش های نبز زندگی می تپند و وقتی لحظه ها را به عنوان موهبتی گرانبها تجربه می آنگاه می توان گفت که از زمان رها شدی اما من هنوز مجبورم که صورت حساب‌های آب، برق، تلفن و غیره فردارا بپردازم هنوز پیر می‌شوم و روزی خواهم مرد مثل همه پس چطور می توانم بگویم که از زمان رها شدم؟ صورت های فردا مسئله نیست. زوال تدریجی بدن مسئله نیست. مسئله از دست دادن لحظه حال است. به تعبیری دیگر اصل گمراهی و خسران که وضعیتی صرف حادثه یا احساسی را تبدیل به مسئله‌ای شخصی می کند و درد و رنج می گم کردن لحظه حال است گم کردن لحظه حال گم کردن هستی است رهایی از زمان یعنی رهایی از نیاز روانی به گذشته برای ساختن هویت خویش و نیاز روانی به آینده برای تحقق آرزوها رهایی از زمان دگرگونی بنیادی آگاهی توست بعضی وقتها این دگرگونی یکباره و برای همیشه اتفاق میافتد. این دگرگونی معمولاً به دنبال رضا دادن به مشکیت هستی در بحبوه درد و رنجهای جدی رخ میدهد. البته بیشتر آدمها برای تحقق این دگرگونی در وجودشان باید بکوشند. وقتی که هنوز در ابتدای مرتبه تجربه بیزمانی آگاهی هستی، مدام بین لحظه حال و زمان در رفت آمد هستی ابتدا در میابی که توجه تو خیلی کم به زمان حال مطوف است اما دانستن همین نکته که حضور نداری موفقیت بزرگی است. این دانستن حضور است گرچه به لحاظ زمان ساعتی چند لحظهی نپاید و باز ناپدید شود در همین رفت آمد هاست که به تدریج می فهمی که باید توجه خود را از گذشته و آینده برگیری و به لحظه حال معطوف کنی. اگر درک کنی که لحظه حال را از دست دادی اقامت تو در لحظه حال افزایش خواهد یافت. بنابراین پیش از آگاهی و حضور جدی در لحظه حال مدام بین آگاهی و نا آگاهی و بین ساحت حضور و مرتبه یکی انگاری خود با ذهن در رفت آمد خواهی بود تو مدام لحظه حال را گم و بعد آن را پیدا می کنی سرانجام حضور مقام دایم تو می شود. برای بیشتر آدمها تجربه حضور هرگز رخ نمی دهد و یا هنگامی رخ می دهد که دوچار مصیبتی عظیم شده باشند بسیاری از آدمها بین آگاهی و نا آگاهی در رفت آمد نیستند بلکه بین سطوح مختلف ناآگاهی در رفت آمد هستند.